یادالله الله و آن اهدای بین ام باخری ان معشومی بدان جدا و رحمت يا رحما آیه نفر بود که قدما توسل کردند این آیه برای خودجیت خبر واحد و در کتب اهل سنت که اساس این کتب و اساس این استبلاله راجع به این آیه مبارک زیاد بخش کرده این ساخن محضار زیادی رو متعرض شدن چونهایی که کمبه کلامی دارن مثل کتب احباد حسین تفسیر و دیگران چونهایی که اصول صرف هم مثل فخر فخرازی و دیگران مفصل راجع به آیه و از کردیم که در ذهنه دلی اصولا دلیل مهم همین آیه نفره و از بس در آیه نفر مسئله تفقه در بین زیادی شده این رو به یک نفری سعیم کردن ارغاق خصوصیت بکنم و خمر شدن برکجیت خبر اند از کنم که راجع به این تمس شکه بایه مبارکه یک صحباته که دو و ابتداعا حالا ما بخواییم نظر کلی رازه به آیه و کیفیت استبلال این آیه مبارکه داشته باشیم حرف میکنم که این آیه مبارکه در سوره طوبه یا سوره براحت خب این سوره براحت یا طوبه احتمال داره که مجموعش در یک زمان نظر شده باشه خلاف ظاهر به حال. و مسلما سوره براءت توبه قبل از حج سال 9 هجرت معلومینه که این سوره بعد از غزوه تبوک به قول اون که غزوه تبوک این سوره مبارکه نازل شد حالا بعضی جاها داره که تا 9 آیه این سوره بعضی ها هم داره که تا چهل آیی سوری یک جان نازل شد که پیرم برکرم فرستادم به به اصطلاح مکه برای اینکه که برمشتی مکنده بشید من صابقاً ارز کردم که پیرم در سال هشتم در ماه مبارک رمضان تخت مکه انجام شد و بعد از ماه مبارک رمضان تو همون ماه راخت دادن به طرف حوازن و از غنه انجام شد و تقریبا اون عضا هنوز تمام تمام نشده بود یک معنایی تشریف بودم به طرف طائف و طائف هم فرق کردم و برگشتم به مکه برای ایام حج مشکین مشرکین آمده بودن برای ایام حج متعارف بود که مشکین برای حج می آمدن مکه پیغم بعدی برای ایام حج مکه نموندن حالا استمالا هم نمتش این بوده که زیه اون سال حدوز زیه بعده بوده جا جا شده بوده برای اصل مسیح پیغمه برگشتن از به اصطلاح از مکه و نموندن تا ایام حج اعمال حج انجام بودن سال نوه هجری هم به اصطلاح قبل از ایام حج قدره ای طبوب انجام شد که جنگ درستی نشد که به اصطلاح من خوردنش رو پیغمبر برگشتن و بعد از قرضه تبوک این آیات موالکه نازر شد برای مشکی در مکه که آن برای حج این آیات همشون که معروف و هست در اولش هم بسم الله نداره تنها سوره قرآن که بسم الله نداره با اختلافی که در علت ازده کردن همین سوره یا سوره برایه اجمالا از همون آیه اول براعتمان الله و رسولی مشکی از همون اول تقریبا سوره با قول اموزیمات سوره بله براعتمان الله و رسولی لدین آهد تومن المشکی سوره که با کنگ و و به اصطلاح مسائل اینطوری رو بروسیم سوره مبارکه و بعضی از جریاناتی که به اصطلاح در حالا شاید قبل از موزول این سوره بوده مثلا قبل از قبله تبوش بوده این هم که این سوره آمده و على سلاست الگلدین خلی فروحت تا ازازا قتل اعف علیه ملعف به این خب اون سه که جنگ نرفتند و پیمان روزا و بردن باین با صحبت نرفتند الاخر معروف این مجموعه آیاتی که در این سوره مبارکه هست زمینه های زمین های جهاد و مبارزه و این قسمته یا با مرافقین یا با خود مشکی و حتی گفته شده که تا قبل از این سوره مبارکه حصولا پهغمبر افتدار به شوره به جنگ با مشکی نمی کردن مرکی مشکی هم بمی کردن پهغمبر دفاع می. بعد از این سوره بعد از حج سال نهم تبرین آیه مبارکه و قاطر مشکین کافر آیا آمد که ندیگه به جنگ اینها بریم به اصطبال مشرکی رو از عرب العرب به اصطبال میشه هم بکنم طبیعت این سوره طبیعت جنگ و جدال و جهاد و مبارزه و اسمت هایی اینجوریست این طبیعتش آیاتی که درش هست از اولش به همین ترکیبه امیر المؤمنی پیغانه رکنه خب بزنان به عب و امیر این قصه چون یک نکات و مزایای خاصی برای امیرالمؤمنین داره خیلی سنیه ها متون مختلفی اگه انسان نگاه بکنه هم خیلی روایت داره و هم خیلی متون مختلف اینقدر سرکنم بازی بکنم توی این قصه که اون مطلب اساسی که در تاریخ بوده راجبه امیر امیرالمؤمنین این کوچیده بشه من چون نمیخوام بارد اون قسمت ها بشنم دیگه یک مقالش برمون خدم به مسئله احالی که الان جای ما اینجا نیست از کرده این مجموعه این آیات این طوریه نیده آیات این طوریه. و خداوند متعال در این سوره به مشکیم پیغام داد که کسانی که مشکیم باشون قرارداد بود اونا کنام اونایی که قرارداد نبود تا چهار ماه آزادن بعد از چهار ماه دیگه باید مستعد جنگ بش و پیغم برکتم تصمیم داری که هیچ مشکلی رو در جهاز عرب نگذن و ارز کردم مثلا خود آیه رو میگن خود سر رو بعد از قضره طبوکه اما بعضیش به قبل از قضره طبوکه مثل علیه سلاست لدین خلد رو حتی لازاقت علیه من از بعد در اینجا این آیه 119 بود که کندم البته شماره 118 مزد شماره آیات رو ما به همین مسابقه اهل سنت میخونیم و بنابرایی که بسم الله روزوه سوره باشه صد و نونزه شما باید باید اضافه میشه باز مثلا بعد از یک آیه دیگه ما کان احل المدینه من, من حوله من الاعراب انیت خلق و هم رسول الله این هم ظاهرا میخوره به حمل از تبوک که به همه رفت آزم بودن اعلام جنگ کردن چه اهل مدینه و چه گروه هایی که بادیه نشین بودن اعراب یعنی بادیه نشین که اطراف مدینه بودن از خیلی گروه هایی بودن همیشه ما بین مدینه و مکه این گروه های اطراف مدینه محدودن یعنی اون تو نداره جفا هست اصلا هست نیاشن در تاریخ چند اشیده هستن که این ها مدینه بودن آیا آمد ما کانل اهل المدینه انیتخل لفو و من حول هم من العراب الله بله بعد شروع میکن آیه که این جهاد فی سبید الله چه برکات و وخیراتی و چه ثوابی برای نهده رو تا دوتا آیه مجومه دوتا آیه را که این جهدی که نا حق ندارن تخلق بکنن از رسول الله درباره بر در مسئله جهاد این آیه تا 120 و 121 آیه 122 و ما کان المؤمنون لین فروکافه از اون طرف هم لازم نیست همه مؤمنین به طرف جهاد درن. ظاهرش این طور چون قبلش آیات جهاده این و ما کان المؤمنون رو کافر بعد بلا با بافاق تفریه هم آمده فلاولا یعنی این آیه آیه مستقلی نیست تفریه هست در اون نفله ما کان المؤمنون رو کافر. فلاولا نفره من كل فرقه من هم تا افرده یکتا فرق حقوف الدین لذا سیاق آیات خود سوره توبه در سیاق مجموعه آیات جنگ و جدال جهاده و این که از رسول الله تخلف نکنین انروح رسول الله باشین اصلا سیاق آیات کنیتا سیاق شدت و هدت و تندی و جعاد و مبارزه ایناست مثلا آیه بعدی آیه آزیزی آمنو قاتل و لذین یدونکم من الكفار و یجدو فیکن خلقه مع علمان الله معلمتقیم علایان آیات قبلش آیات بعدش کل سوره نازر از مسائل جهاد. و رضا هم همچین تحجب میکنه آزام که این آیه ناظر باشه مثلا به خبر واحد فقا در خلوول آنها را نمی‌خواد فرقه‌شون تا اتفا، لیکن فرقه‌شون فردی، و لیون زروقانشون اداره‌جوه ایله، لعنت لام یحدرام. این یک ای مردالی سکسیا و, و آیه در قبلش و بعدش مال جنگ و جدال و جهاد فی و نیز ویللاو تخلوک از رسول الله می‌کنی، و همه مؤمنین هم برای جمهور ظاهراً و مکان المؤمنون ظاهرا از کلمه مؤمنون چی در مکه چی در اطراف مکه اینها همه نرن فلولان افرد اقید به قرینه ای فلولان باز بسنید به مؤمن اطراف مدینه و الا الان بحث مکه اشتباه به مورد مدینه و الا در خود مدینه که پیغمبر وجود داشتن. وقتی با آمدن فای تفری فلولا افرد لذا به ذهن میاد ظاهر آیاز اینطور دیگه به ذهن میاد مسئله تفقه در دین و اینکه یک عده‌ای برن برای اینکه دین رو یاد بگیرن به نظر میاد در اینجا مسئله جنبیه نه اصلی مسائل اصلی قبلش و بعدش و سیاد و خود کل سوره جنگ و جهاد است صحبت علم و تفقه و خبر واحد و خبر فقيه و تفسیر در دین نیست به اسطلاح مثل یک جمله معتر ماننده این طوری بگیم که انما کلام در این بود که همه مؤمنین که در اصلاح مدینه هستن اینا لازم نیست همشون برای جهاد برن یعنی یک ادرشون برای جهاد برن و حالا که لازم نیست همشون برای جهاد برن برا. پس ببینید یک امر تفریعی و امر جنبی پس ادهشون بیان مدینه تفقیه در این بکنن بگرد بکنم خدا والله نقارین کل در حد منهم صایص سیاه و آیات رو دقت فرمودید سیاه آیات آیات جنگ و جهاد و مبارزه است این مسئله تفقه در دین به اصطلاح ماهاوس جمهوری معترضه یا جنبی ذکر شده اون اصل این بود همه لازم نیست برای جهاد در بود همه لازم نیست برای جهاد در حالا که همه لازم نیست ببین در ذنبه اون فلولا پس بنابراین این حاله که همه لازم نیست ازدهی هم برای تفکه درگیه اصلا ازدهی از علماء به همین آیه اونباله که تمثل که علماءی که برای تفکه همیندن جهاز برایشون واجب نیست اصلا این استزهار هم فیغیر محلت اصلا نادر به این نکته نیست تصور بخیر آیه اونباله پس ما در بررسی آیه که از اول که میخوایم شروع بکنیم در بحث اصولی که آیا به درد ما نحن فیلمی خوره یا نمی خوره یا مروزه به ما اول کار سیاه آیات و سبچ آیه قبلش بعدش این وضع آیات رو بررسی کردن وضع کلیتن سوره اصلا یک چون سوره توی آیات براعت و جنگ و جهاد بود تویش بسم الله نوشته نشده که بحث معروفیه بر میگردن بحث صواب که چرا بسم الله در این سوره نوشته نشده از عثمان نقل شده که ما احتمال داریم این جزء انفال باشه متصل باشه و پیغمبر اکرم بقیه سوره رو معین کردن این یکی رو معین نفرمودن به اختلاف شد آیا جزء انفال هستن و رضا بسم الله ننوشیم خب نظر متأثر داره و که از امیرون که نه نکته این نیست چون سوره سوره جنگ و براعتان من الله و رسوله و آی آیات تنبی و حدت و شدت با کفار و منافقین از این جهت درش بسم الله مناسبی نشده از این که ما این تنها سوره قرآنه که در اولش بسم الله نیست و بهی صوره همه شون دارن که ما باید واضحان داریم حالا پس از اول کار سبک و سیاه و رو که نگاه میکنیم سبک و سیاه و نیست اساساً به مسئله تفقه که از ما به صورتی مثلا جمله محترزه یک که حالا لازم نیست همه شما برای جنگ بریم حالا ما کان المؤمنون لینت رو کافه لازم نیست همه شما برای جنگ بریم یک ادهه هم حالا که لازم نیست پس این لا کلمه فا در اینجا خیلی عجیبه این فا یک نوع است از برما قبل خودش بگیه حالا که همه تو نرسیم پس یک ادهه تو برای این که تفرق باره درگیم بکنیم به این نکته پنیچیه این که از بحث سیاه و مساق آیه و بقیه آیه اگر این آیه اصولاً مثل پر آیات اون آیهات قیبت مثل آیاتی که در باب مثل اون جهاده، آیهاتی در باب طلاقه اگر آیه مبارکه و خود این آیه به تنهایی یا حالا قبل میشه ناظر به مسئله تفکار دردین بود مثل چندتا چند تا آیه داریم و شعرها یا تبا امال غابون الاترا انه کل فکل بازن یه و انه هم یه سیاب و آیاز راجی به شن شعر شعر را افتا نیمی زنن هرکای محفی زن. هر می هر چیزی رو زبون می شون می آدم اگر آیه سبک و سیابش ناظر بود به مسئله توقع در این اون رفت می شد مثلا ترسان به اطلاعش هم بودن. ساخت کن اما ایاز سبک و سیابش اساسا رو جهاد بود اساس نقطه اون بود در اصناع کلام حالا که گفتن همه لازم نیست برن چند دقیق بکنیم پس یه ازنبیان سفر باید درگیم بکنن دقیق بکنیم از اینه که اگر نقطه اساسی جهاز بود و این یک مسئله تفریعی بود و مسئله کلام نبود و سوق کلام و ترکید کلامش نبود دیگه اطلاق برش منعقد نمیشه اون تمام تمسک و اصولی ها به اطلاق هست مثلا لیونوز و لیونوز رو با اوممان انذار چه مفیده ایل باشه چه نباشه لعنه هم یه ازداران ایل پیدا با فرد نقطه فنی روشن شد نکته وصولی اگر بخوایم ما به اطلاق آیات اینجوری که فعال رو بزرک کردیم یک نکته اساسیش تبت و است. اگر آیه یک مطلب جانبی رو بزرک کرده مطلب جنبی رو بزرک کرده یه همه مومنون برای جمعه نزده هست حالا که همه نرفتن چهارتشون هم بیاید تفاقای دردین بکنن مخصوصا اگر بگیم مثلا شنوزلای هم در نظر بگیم که اینا هشائر و قوائل عربی بودن که نزدیک مدینه بودن مثل اصلا و بفار رو اسم بودن جوهینه و مزینه و اسم اینها در کدو تفسیر هم آمده اسم این هشائری که منخوله هم من الاعراب مراد به اصطلاح در اون آیه قبلی برای این یک دفعه میگیم آیه اصولا یک اصل کلی وارد یک بحث کلی شده برای مسئله تفقه در دین این خصوصیاتی که صحبت شد. یه یعنی نه آیه بحث تفقه در دین جانبی کرد این در اصطلاح اصولی چی میگن یعنی اطلاق نداره این اصطلاح ما اینطوره چون در مقام بیان از این حیثیت نید در مقام از این از نیست چون اصل مقام بیان را که به جله و رفتن افراط بجه و جنگ و این این‌ها بوده حالا که ادعای رفتن برای جبهه یه ادعایام برای بوزه بعضا مستقیما بیان دارند اینا اون مثلا بوز جنگ همیشه سوال جنگ و جهاد و مبارزه و سیاق آیات صرف سیاق آیات رو اون جهاد این یک مطلب یک تقریب به اصطلاح به اصطلاح اصولی صحبت کردیم اصطلاح دو که یعنی هم مطلب رو به یک تعبیر دیگی میتونیم بگیم. اون تعبیر این که اصولا آیه در مقام, در مقام تأسیس حکم تعبودی نیست خود دقیق اصلاً اصلا آیه مبارکه نمیخواد یک حکم تعبودی درست بکنه جدید غیر از اون حکم و اغلائی. در از آیه خویی هم این مطلب رو گفتیم شد فقط اداره نداره اصلا آیه نازل است به یک صفت سیاق و قضایی ادهی رفتن جنگ ادهی هم بقولون اونده جهاد فرنگی مبارزه فرنگی چی میگرم به تبیر اینجور دارم هم بیان در مدینه این متعارف بوده آشنا بشن با معارف دینی برگردن و قوم خودشون رو انذار بکنن همشون که ادعای میرن جنگ برای دفاع از حیثیت و کرامت و شرافت و حیثیت و خودشون یک دن بیان در مسیر تعلم علوم بکنن. تقوّض دقیقی پیدا بکنه. یعنی سوال اینه با این توضیحی که من دادم و بعدا اگه خودتون آیات ان شاءالله تلاوت کردیم میبینیم آیا این آیه مبارکه در مقام تاسیس یک حکم جدید یک چیز جدیدی میخواد بگه مثلا اگر عقل برای شما مطلبی گفت شما قبول بکنید و لو علم پیدا نکنید چیزی جدیدی سها اگر مطلبی گفت شما حالا سعی نمی‌شن داره عذرا توش نداریم متفقعه بدید این اگر برای شما گفت شما واجب است هر کو رو گوش بکنید چه علم پیدا بکنید چه نکنید چه بدانید از شریعت هر چه ندارید این نفر اصلا معنی ندارس کندن برگشتن کیش گفت خب من خدایی خیلی دقیق می‌بینید عجیبی نه با اون آیات یه قردم ماشینی نمی‌خواد خیلی ارزش داره اگر بیم با شریعت نمی‌خواد خود نظر من اینجوری در نمیاد بگیم نه این آیه گفته شما تعبدن قبول بکنید بخواد بگید جور در نمیاد جوره اصلا آیه نازل واقعا این چی می‌خواد خب بگه سر و سیاق آیات نازل به اینه که تأسیس تاسیس حکم جدیدی بکنه یا اصلا سر و سیاق آیات کلا نازل میشه عمو اوغلایی ایده شما حالا لازم نیست ببینیم برای حالا که ازدهیتون نرفتین جنگ ازدهیتون از همونه که نرفتن پوشن بیان در مدینه تفقیه بکنن از رسول الله احکام و دینی یاد بگیرن و برگردن و باز محضوم خودشون بگن برای اینکه اینا حضر پیدا بکنن این به ذهن اونه که به ذهن من الان میاد آیه جز یک تک و سیاه و اغلایی چیز خاصی توش نداره یک تعبد خاصی یک نقطه خاصی انسان از که احساس نمیکنه همه لازم نیست جا ها و قایه های میمونن تو خونه. حالا این عهدهی که موندن عهدهیشون بیانن احکام دینه بگیرن این چه رفتی داره بین که شعاره مقدرست یک روش جدیدی رو ابداع کردن رو در این پس یک بحث می ده، می ده، انجام نه این اونایی که موندهن، ایده از اونایی که موندن, که موندن بیان احسان بیاد بگه، برام مرقوم احسان بگه. اگه حال دیگه میتونستان بکنن. شارع خب نه، بعضی کار دی نمی‌کردن. یه یکیش مشهور بنیان، یه کیش مشهور ناجی کار خودشون بودن خب. این ایده مشهور تعلیق بودن. تمام مشغولاً pleinement دراکن، نه من در عربی، شغل, شغل اونایی که مونده چیکار می‌خواد بکنن. یه قسمتی از اینایی که موندن من کل فرقه من منهم طائفه. اون وقتم یعنی اگر بنا باشه باشه با تمام این خصوصات مرقب باشه. مثلا ف از هر بهدفن با یک تازه بیاد. حالا همون پنج شده هیچ شخص نیاز این دی در بیاد این که بازی که باز من خو آمزار من کل فرقت من هم تاعرفه اگر تبد باشه باز همین از این یک دهگ. دهگ. تا از این ده یک تاره. حالا اگر پنج شده نومه از یک ده یک دهگ پنج تایف آمدن بیشتر آمدن که تقسیم شدن یا اصلا از اون ده نبودن پس که مثلا در مناسیقی که آدم صورتشی سه هستن آزای زبا مثلا فارس هست مناسیقی فارس هستن بولیش رفتن مناسیق فارس هستن چورت هستن عرب نید مثلا تو آیات این آیاتی بخواد بگه هر کسی با از همون تایجو خودش باشه این معنی بخواد بگه پس همین ط که باشه عرف اگر بخوایم برگردیم به عرف عرف تعبودش هم با هم می‌کنم میگه هر اوغلا نیست یه که مونده و نظام با فر این چی فر این چی اخر هرکی همه نظر دیهشون بیان از هر ثلث لازمی لازم هر فرقه ای باشه اینا همه برای بیان و است بیان تحریف عرفی است و, و لازم میذنه بله از هر فرقه ای باشه طبیعتاً بهتر شد تأثیر بکنه در مثلا بومیسازی تبلیه با قابل ها تأثیر بیشتری بکنه اما این لازم این تعبد که میسید توی این آیه اون باره بیچ فقیه تعبد نداره خب پس این راجع به سبک و سیاه آیه و وضع آیه که آیه اصلا وضع آیه قبل از این که حالا با به مفتادات به شما و معنای آیه و شواهدی که موجوده اونی که الان ما در اینجا داریم در سفت سیاق این انصافاً نمیکنه که آیه داره تحسیل مقام تحسیل درباره باره باشه. تفخر کش اجمالاً ولیتا بگیم اجمالاً این معنایی که اطلاح نمید اجمالاً اشاره است یک طریقه و و این هم اشاره نیست قبل از اسلام به صدها سال یهودیت این کار داشتن علمای دینی داشتن علمان دینیش هم ربی میگفتن که خب برای هم وقتی انسان تازه نگاه که راست نشون روحو نگفت خب چیان خیلی زحمتی شد این علمان یهودی خیلی مطالعات و کار روزن ولی زام برای هم میگین زحمت زیاد کشتن شعور ندارن که مثلا ایما یعنی لبصار بلچه چند ظاهر انسان که نگاه میکنه واقعاً تاریخی که اینجوره خیلی این ربی ها زحمت من در یکی از این که یه نسخه از همین کتاب تحلیل بود دو میلیون و 500 هزار صفحه میل و شوی کردم دو میلیون و 500 هزار صفحه فقط یک نسخه از کتاب تحلیل بود که شرایط میشناس. واقعا یعنی اینطوری بوده که هر روزی میوزه چند صفحه اضافه میکرد. تا دو میلیون و برد از که چون یهودیها برای سال اینکه آواره بودن قبل از اسلام آواره بودن هست. 600 سال، 500 سال قبل از اسلام آواره بودن. از به قول از فلسطین در آمده بودن و آواره بودن و در کشور اروپای غالباً شو اینا نسله رسی ایسای مسیح رو ویران و ایسای مسیح رو وجود نداشتن اینطور در دجال پاک یا اون های منطقه دست اون تقو رو به صورتان می‌کشیدن این یه همچین کشیق قرار نبود اینطور نهتی ظرا مالی ایتریه باشه یه ای ای سابقه ساله ساله به آوارگی و و و و اینا ها رو در تاریخشون این طوری که تاریخشون دو آن زمان ما حالا این کاری که ولنیاسا تشلا رو صدرو مسیحی بودن اصلا ارسل و ما، این دو نفری که در قران ازشون اسم میذین حواری اینا حواریون عیسی هستند پولس و پاولس و یوحنا اینا پیغمبر نیستن از طرف راست عیسی استرا جزء برای سبلی. میکنه؟ یعنی این که مثلا قبل از اسلام ادهی از کشیش ها و ادهی از علمان یهود اینها به اصطلاح کارهای علمی اینطور نمید که همین مثل مشرکین جاهد و نادان باشد اصلا در اصطلاح اون زمان بینام بودن اهل کتاب اینا مولاق علم ها اینا مولاق اینا آلم هست اصلا بینام بودن کتاب چرا چون خود مشکی امی بودن و اهل, اهل نبودن ن اینطور نموچه علی بله اگر بگیم این آیه ورکه در فقط در حدود مشکین و ناظر به حال مشکین بله در تفکر نداشته و بلکه این حالت آشنایی با انجیل آشنایی با تورات و مخصوصا تورات یعنی اولنای یهود به خصوص اخبار یهود به خصوص در مدینه با در نه زیادی از اخبار یهود من اذكر بعضی از شواهد تاریخی حتی شواهد قرآنی هم به تورات فتلوها شواهد قرآنی هم معیدی اینه که نسخه اصلی از توراق مدینه موجود بوده اینه بحث است شواهد هم معیدی اینه خود یهود هم قائل هستن که یه های بعد بعد از اسکلام بر تورات توراق وقتی که نوشتن کم و زیاد شدن علایه حالا این شواهدی وجوده که در خود مدینه نسخه صحیحی از تورات موجود بوده هم در قرآن شواهد داره هم در تاریخ داره در قصه رجیم داره من نمخواهد به بحث تاریخی بشم شواهدی موجوده که اون نسخه و لذا وجود احبار و علماء و آشنایی با دین و با مخواهیم دینی یه محکوم جا بوده در مدینه این آیه در سوره در سال نهم هجری الهام اول معروف شده داره من خیلی شانه را قبول نداشتیم به هر حال یعنی یک چیز جدیدی نبود تفقه قدیم شده موشتی جدید بود اما اصول بیعود جدید نبود تهرانها را عکرم فرودند که در ادیان الهی تفقه در دین هست و من جامعه باقیه هاست در این دین هم باید تفقه باشیم پس وقتی صحبت جهاد بود دین در جهاد رفتن ازده هم بیان برای تفکار دردی این درست به مطلب محقول و غلائی. اما دیارای اطلاق داشته باشه که با اون کسی که آمد یک مطلبی رو به عنوان دین گفت شما حتما تحبودن قبول بکنید ولو اطمینان ندارید این حکم است. بسر ای به این از این آیه در نمیاد من بخواب اینو بگرم این معنا این سنخ معنا از این آیه این در نمیاد در تفکرشان در نمیاد چه در خبر وارد اصل این معنا این معنا که بگیم مراد از آیه است کسی که بصیر است و تفکر پیدا کرده چیزی گفت شما قبول بکنید و رو وسوگ نذارید یا به نظر ما اولو ملا میم مولا حرفش پیدا اون طور سر نمیاد چه اصلا در نمیاد این زواهر کتابونی که ما از پدران و چیز دی و از دیگران شنید این خیلی نمیخوره دینی باشه من جاها شبه داره بگیم آیه آمده بگه نه شما باید حتما قبول بکنید و براتون تو واضح نیست که هم رو ملندید. انصافش انصاف قضیه سیاه و آیه و خصوصیات روی که آدم در آیه نگاه میکنه دلالت بر این معنا نداره این راجب این هست و اما با نظر از این سیاه و آیه و جهاتی که هست اجمالا آیه مبارکه اجمالا بیدانه در اصل این که ناظر از به نوع حرکت علمی و حرکت فرهنگی و آشنایی مسلمان ها با حقالیق دینی به نفر تفقه تفقه غیر از علمه فقه بخته در کتاب معالم داره فقه فهم چه شده فقه فهم نیست حتی بخته به فهم ها ظاهرن اون هم نباشه راقب اسلامی فقه رو از توسل و من علم مجهول الهی شیء معلوم الهی شیء مجهول می‌ذنه یک نوع حرکت فکری به اصطلاح اون حرکت فکر رو که حرکت ذهنی می‌ذارن اون رو می‌ذنه ظاهرا تفقه مثل به شیء مثلا نسبت فلسفه به علوم اون زیربناها و اون حقایق دین رو پیدا کرده. اون چیزی که بتونه دین رو به نحوی یک نگاه چه در احقایزش در احکامش در اخلاقش به نحوی یک نگاه اون ریشه های اصلی رو بشناسید ظاهرا یک چیزی شبیه این بوده لیه تفقهو فی از اکثر این شواهد هم نشون میده که حتی از زمان پیران بعد این کلمه فقیه معادل راوی نبوده این در درنی اول بحث خبر واحد کردیم چنین حدیثی سر ما به اسناد اهل سنت هم در بخاری نه من میگم در بخاری هم واش نه در بخاری نبود نذرن لا و امرن سمع مقالتي فلعا سمع حدثا آبین کما سمعوا این بس است دیگر دوستان خر به حامل فهن اله من هو عقبهم فلمي فر بعدهم و رد حامل فهن اله منده ای که بفر پس ما یک محدث و راوی داریم یک فقیر داریم از کردن در زیل این حدیث منحفظ علاق امتی اولین حدیث هم الان آخریهی الان یکون چی آخریه به اصحالله یوم القیامه آلمان فقیر هم اینطوری داره به اصحالله یعنی حفظ چه حدیث مساویس با فقیر شده من منحفظ علاق امتی دقت کرده توی همه متونش نیست توی بعضی از متونش در آخرش اینه بحثه الله یوم القیامته آلمم فقیه ها این آیه مبارکه ناظر به تفقه هست انصافا لیکن اجمالا نه در مقام و بیان این رو نمیشه انکار کرد انصافا شواهد خیلی روشنه خدا آیه روشنه انمال کلام آیان به جای اینکه مثلا فقط دنبال این بودن که آیا این نفر واجبه حالا مثلا چون لولا آمده لولا فیدالتش بر وجود نیست بیشتر برای اثبات وجود از لعله یه حضرون استفاده کردن از اون طرف هم شون گفتن لعله معنای ترجیح ترجیم در مورد حق تعالی ممکن نیست پس با معنای مجازی مرد باشه و معنای مجازی یکی بر حضر این حجوب حضر در بازن و الله اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه لعله, لعله به معنای ترکیز به این هدف به این غایرکینا هذر پیدا بکنن ما باشیم و طبیعت بسته هذر از هر چیزی به حسب خودشه اگر مخروحه هزار یک دوره اگر مستحب یک دوره اگر واجب یک دوره اگر حرام طبیعت هزار اینطوره هذر اینطور این نیست که حتما عمل باشه اینا چون کلمه لعله رو گفتن برحت فعالا اصلاح نمیشه حقیقتا پس ما باید بگیم اینجا مجازه مجازش هم میشه مسئله به اصلاح وجوب حضر و لذا از همینجا یه بحثا شروع میشه یک چرا وجوب حضر؟ بگیم نه حضر حسن داره اینم یک مجاز دیگه دنبال این بحثا رو بگیریم بعضی گفتن نه وجود در نمیاد بازم از لعله وجوب در نمیاد پس که مجاز دیگری میگیری ملازمه نداره که حتما وجود بگیری مجازات متعدد هست بعد دومرتبه دنبال مسئله انظار انزار که انزار بر قرار باهز صدق میکنه صدر می صدق نمی کنه. انزار بر وضع و مفتی و اینها صدق میکنه باز دومرتبه بحثی رو که ما دیروز مطرح کردیم که انزار ممکن است انزار واجب باشه حضر واجب نباشه مرحوم شیخ توسی از این راه واجب براد شده میگه می می پیغمبر و انزره اشی میگه پیغمبر انزار نکرد با این که انزار کرد اما ادی مثلا حضر میکنن ادهی نمیکنن وجوب حضر توش در نمیاد از این راه یعنی به عبارت اخرى تلازم ما بینه همان نیست ممکن است بگیم وظیفه فقید انزار هست اما وظیفه اونها این نیست که حتماً عمل بکنن. مثل این اینکه بگیم وظیفه استاد رو به با قول بردی ها وظیفه استاد هست درشه اما وظیفه شاگرد نیست که حتما مقاله روش قبول بکنه اون چیه که درست میدونه قبول میکنه چیزی که نمیدونه نمیکنه این منافات نداره این دو تا وظیفه با هم دیگه به اصطلاح تلازم ندارن مضافن به اون اشکالی که از خیلی از سر که هزار غیر از مساله عمل به اشکال دیگری که انزار ممکن است به مطلق شریعت باشه دیگه همون اینطور تو طور اشکالاتی که الان هست و تفقه‌های درینی شامل در حدیث نمیشه مجموعه اشکالاتی که حالا بخوام یکی یکی بگم طولانی میشه در این به اصطلاح استدلال آیه چون آیه را آیه اصلی گرفتن و وابسته انصاف شب ما باشیم و با همون معنای اجمالی ما بیش از تفکر در دین از توش در نمیاد مسئله حدیث رو باید با یک زمینه خارجی بهش اضافه کنید و اضافه هم در این که در میان مسلمان ها رست بود اده بی در وضعه های علمیه و هنوز هم آموزش دین میاد تفکر پیدا می بعد بر میگردن و مردم انذار می ابلاغ میکنن این جای شکش نیست این جای بحثش نیست از این مطلب صح بلکه از کردیم اوغلایی هم هست بلکه از کردیم در عیان قبل از اسلام هم این مطلب محرح بوده و جایی بحث ندارد مطلب بدیهی و روشنی است اما اینکه شامل خبر واحد صرف بشه این نیست مگر همون نکته ای رو که باز اول بحث عرض کردیم اول بحث ابن حزم و اینها میگن ما الان احکام دینون از همین خبرها گرفتیم اگر بنا تفقه با در باشه و انظار باشه به همین است. و الا راه دیگری ما نداریم از کردم باید برگردیم به یک زمان خارجی و الا در زمان نزول آیه اگر آیه نزولی در اون زمان بوده در زمان پیغمبر ما از آیه مبارکه این معانی که اینا گفتن که شامل مثل خبر وارد بشه به طور کلی از آیه مبارکه در نمیاد انصافا از خود آیه مبارکه استفاده نمیشه. حالا کلوه مضافحا یک مشکل اساسی چون آیات قبلش در جهاده یک مشکل اساسی در ارجاع زمین هم هست مثلا گفتن ما کنم تو لیند توی کافه الالجه فلولا نفره من کل فرقت من هم طائفه ای وقتی این لولا نفره یعنی لولا نفره الجهاد. نبیان به مدینه یعنی وقتی اخرین جنگ دیدن که خداوند امدادهای قیبی به مسلمان ها فرستاد و مسلمان ها با عدد کم پیروز شدن اینا بصیرت دردین پیدا میکنند از تفقه بصیر یعنی ایمانشون به خدا به وعدهای الهی زیاد میشه این جمعهانا گردن و لیونز و ها برگردن به کسانی که جهاد نیامدن ازا رجا و به اونها بگن که شما جهاد نیامدین جهاد این طور بود این طور فواند داشت این طور ما آیات الهی دیدیم در یک جنگ پنج هزار من پرشته بکنم در یک جنگ 3000 هزار سلاسته آلاف که خب اینها رو بگن لعلهم هم یهزرون که اونایی که موندم هزار و باز دو مرتبه تمایل به جهاز بدادم ببینید اگر این معنای آی آیه باشه اصلا کلن دیگه از باب در دردی خارجه اصلا کلن روشن شد اصلا کلن از این مقصودی و مقصدی رو که ما داری، خارجه. هلولا نفرمین کل فرقتن من هم تایفه گفتن این هم باید مراد اطراف مدینه باشه حالا برسر از اون تفقیه دارن یک تایفه برن جنگ یک تایفه هم بیان مدینه برای تفقیه بعد از اینکه اینا بسیارات دی پیدا کردن و یوند رو قومه گفتن مراد از قوم در اینجا اون مشرکین خودشون هم اشیری خودشون اون قبیل خودشون مثلا قفار یا اصلا خب مسلمانه ها اینجا در غفار هستن یه دوشون برن جبهه یه دوشون بیان در مدینه از رسول ها یاد بگیرن ولی یونز رو قوم هم این قوم در نیجا این مشرکی کفار با تو زهن ما تهاره همه که قوم یعنی مسلمان ها یعنی مسلمان بیاد تو حوضه یاد بگیره برگرده به مسلمان ها دو مثلا مثلا مثل در قرطبی نوشته و یونز رو قوم هم ای الکفار قرطبی اینجا بنا اصلا اون قومه هم رو برنه کفار گرسی رو قوم هم قوم کفار لذا در خود آیه انصافاً چند احتمال بگه هم داده شده از کرده بیه حال ذهنی ما الان اینجوره ازش تفق باه در داره بودیم و الا اصلا معنی آیه رو جورهای دیگه هم معنی شده خیره سیاه کرده اصلا جورهای دیگه هم معنی شده پس تا اینجا صحبت این شده یک سیاه دو معنای ظاهری آیه سه جمله ای از مفردات مفرداتی که اینجا مرد کلامه کلمه یک کلمه طاعته چون میگن طاعته شما یک نفرم باید بشه دیگه حالا بحث کردن که تافه شما میده فرقه گفتن فرقه هست سه نفر به بالا این از فرقه میگن. حالا اینم باز بحث بشه اون وقت انذار، حقیقت انذار چیه؟ هم چیه؟ تفقه حوف دین چیه؟ یعنی آیات ایلاییو در جنگ رو این این تفقیه در دینه یا بیان مدینه پیش رسول الله احکام ایلاییو رو یاد بگیرند تفقیه در دین بشه قومه هم قومه هم المؤمنین یا قومه هم کافرین کفا انذار انذار موردی مراده یا انذار به کل شریعت مراده لعلهم یحضران هزار مراد عمله یا حضر معنای خوف نفسانی و حضر کردن ما در خود قرآن داریم اعتی الله و اعتی الرسول لحظا بعد از اطاعت خدا بر چی؟ اهذرو هم داریم این هذر در اینجا از اون قد تفرق کرده احتمالات این احتمالات اونچاست ما اول باشیم ما باشیم و چی نظر بسیط بدون اینکه دیگه خیلی و ذهنی ایجاد بکنیم و اقوال مفسرین اجمالا یک مطلبی در میاد که ایده که رفتن برای یاد از اون باقی ماند‌ها ایده ای امجان تفقه بکنن و برگردم و احکام الهی رو یعنی بیا شریعت رو انذار بکنن تو در این بکنن و از این آیه مبارکه که جز یک فهم خوغدایی و عرفی ما چیز زائدی در نمی که تحبلی درش باشه و عرضی به کلمه لعلهم یهزرون هم یک صحبتی هست اگر نخلیم. ما به نظرمان لعلهم یهزرون در این مشکل نداره با حال خودش باشه در اینجا این, این ترکی که اینجا هست به خاطر اون نکته اساسیش به صورت فعل آمده نه باشه لا لون شاطه ما در بحث اسناد فعلی اکثر در بحث اسناد فعلی داشت تجدد خوابیده اسناد فعلی عبارات از اسناد حدث الالفاعل ما علانط در حرکت سیلانیه سیلانیه من العدم الی الوجود خیلی استقبال این لعله هم یحضرون روی این جهازه به خدا تعبیر کرده یعنی اینطور نیست که یک بار مهم باشه این داره نگاه میکنی این حالت, این حالت سیلانی رو ممکنه امروز حذر نکردم فردا بکنم فردا کردن پس فردا نکردن پس اون فردا بکنن دقیق میکنی در شرس این حالته و این باید محضت این حالت محضت اینه خبیل دوه محضت ا اگر دیگه این باشو مشکل الله